سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان. امروز هم با یک قصه زیبای دیگه در خدمت شما هستیم اسم این قصه زیبا دوازده شکارچی هست بریم که با همدیگه دیگه بشنویم یکی بود یکی نبود شاهزادهی بود که با شاهدختی نامزد شده بود اون شاهدخت رو خیلی دوست داشت یک روز که شاد و خوشحال در کنار دلبر خودش نشسته بود، بهش خبر دادند که پدرش در بستر مرگ افتاده و دلش میخواد پسرش رو در واپسیندم زندگی ببینه. اون به محبوبش گفت، افسوس، باید برم و از تو جدا بشم. این حلقه رو به عنوان یادگاری از من در انگوش کن. هر وقت پادشاه شدم، بر میگردم و تو رو به قصر میبرم. شاهزاده سوار بر اسب شد و شتابان به سمت پدر حرکت کرد. وقتی به بالین پدرش رسید که در آستانه مرگ بود. پادشاه به پسرش گفت: عزیزترین فرزندم، دلم میخواست قبل از مرگم تو رو ببینم. از تو میخوام به من قول بدی که با دختری ازدواج کنی که من مایلم و نام دختر پادشاه کشور همسایه رو برد که خیلی دلش میخواست همسر پسرش بشه، شاهزاده با شنیدن این حرف خیلی ناراحت شد، ولی چون به چیزی به جز پدرش فکر نمی کرد، با بحت گفت، بله، بله پدر عزیز، هرچی بخوای همون کار میکنم. بعد پادشاه چشمانش رو بر این جهان بست و جان به جان آفرین داد. بعد از اینکه شاهزاده بر تخت سلطنت نشست و دوران سوگواری به پایان رسید، به یادش اومد که باید به قولی که به پدرش داده پایبند باشه. اون کسانی رو برای خاصگاری از دختر پادشاه کشور همسایه فرستاد. اونها هم به تقاضاش فوراً پاسخ مثبت دادند. در این زمان محبوب اولش این خبر رو شنید این فکر که دلدارش اون را رها کرده خیلی دردناک بود و به قدری زربی سختی براش بود که بیمار شد و در بستر مرگ گفتاد. پدر به دخترش گفت عزیزترین فرزندم چرا اینقدر غمگینی؟ اگه چیزی میخوای به من بگو تا برات فراهم کنم. دختر لحظهی به فکر فرو رفت. بعد گفت پدر عزیز دلم میخواد یازده دختر همقد، همسن و همقیافه با من پیدا کنی. پادشاه گفت اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه فورا تقاضات رو برآورده میکنم و دستور داد در قلمرو حکومتش به دنبال یازده دوشیزه همقد، هم اندازه و همقیافه با دخترش بگردند. بعد شاهدوخ تقاضا کرد که دوازده لباس درست مثل هم برای دوازده مرد شکارچی بدوزند. وقتی لباس ها حاضر شد، یازده دوشیزه یازده جامه رو برتنگ کردند و خود شاه دوازدهمین لباس رو پوشید. اون از پدرش اجازه سفر خواست و به همراه یازده دختر به دربار دلدارش رفت. وقتی به قصر رسید به حضور پادشاه رفت و پرسید آیا به چند شکارچی نیاز داره و حاضر اونها رو به خدمت خودش در بیاره پادشاه اون رو نشناخت با خودش فکر کرد که اونها جوانان زیبارویی هستند پس گفت بسیار خوب با کمال میل همه شما رو به خدمت میگیرم به این ترتیب اونها به عنوان دوازده شکارچی سلطنتی گمارده شدند پادشاه بر و بهترین شیر جهان رو داشت چون این شیر از هر رازی خبر داشت یک شب شیر به پادشاه گفت واقعا فکر میکنی که دوازده شکارچی پیدا کردی؟ پادشاه گفت بله واقعا اینطوره اونها دوازده شکارچی هستند شیر گفت اشتباه میکنی اونها دوازده دوشیزه هستند پادشاه گفت امکان نداره چطور میتونی این رو ثابت کنی؟ شیر گفت فقط مقداری نخود روی کف اتاقت بریز. بعد میفهمی که حق با منه. مردان وقتی که گام بر میدارند قوی و محکم هستند و هرگز نمی‌لغزند. اما دختران میلغزند و سر میخورند و نخودها از زیر پاشون در میره و در اطراف پخش میشه. پادشاه از راهنمایی شیر خوشحال شد. و دستور داد مقداری نخود بر کف اتاقش پخش کردند. خوشبختانه یکی از خدمتکاران پادشاه هواخواه شکارشیان جوان بود و وقتی شنید پادشاه میخواد دوشیزگان زگان رو امتحان کنه پیش دخترها رفت و گفت شیر میخواد به پادشاه بقبولونه که شماها دختر هستید و اونها رو لو داد. شاه دخت از خدمتکار خیلی تشکر کرد. بعد از رفتنش به بقیه دوشیزگان گفت حالا باید سعی خودتون رو بکنید و روی نخودها محکم قدم بردارید صبح بعد پادشاه به دنبال دوازده شکارچی فرستاد اونها به اتاق خلوت پادشاه که کف اون پر از نخود بود پا گذاشتند اونها چنان محکم گام می داشتند که حتی یک نخود هم از زیر پاشون در نرفت و پاشون نلغزید بعد از برگشت اونها پادشاه به شیر گفت حالا معلوم شد که اشتباه کردی خودت دیدی که مثل مردان گام بر داشتند شیر جواب داد اونها از نقشه ما بو برده بودند و تلاش کردند تا بر زمین نیفتند این بار دوازده چرخی ریسندگی در اتاقت بزار وقتی از کنار چرخا بگذرند خواهی دید که چقدر بر سر زوق میان درست بر اکس مردان پادشاه از این نقشه هم خوشش اومد و دستور داد دوازده چرخ ریسندگی در اتاقش قرار بدن. این بار هم خدمتکار خوشتینت پیش شکارچیان رفت و هر چه درباره نقشه جدید پادشاه و شیر شنیده بود بهشون گفت. بعد از بازگشت خدمتکار شاهدخت به دوشیزگان گفت خواهش میکنم سعی خودتون رو بکنید تا بر خودتون مسلط باشید و اصلا نگاهی به چرخای ریسندگی نکنید. صبح روز بعد پادشاه به دنبال دوازده شکارچی فرستاد. اونها وارد اتاق خلوت پادشاه شدند و هیچ نگاهی به چرخای ریسندگی نکردند. پادشاه بار دیگه به شیر گفت: باز هم منو فریب دادی. اونها مرد هستند. چون دیدی که اصلا نگاهی به چرخای ریسندگی نکردند. شیر جواب داد: اونها از نقشه های ما با باخبر میشن و با احساسات و عواطف خودشون مبارزه میکنند. اما پادشاه تصمیم گرفت دیگه حرفهای شیر رو باور نکنه دوازده شکارچی در خدمت پادشاه بودند و اون هر روز بیشتر به اونها علاقه مند می میشد یک روز در حالی که اونها سرگرم شکار بودند به پادشاه خبر دادند که نامزده نشانکرده او دختر پادشاه سرزمین همسایه در سفره و به زودی به اونجا میرسه دلار واقعی با شنیدن این خبر احساس کرد که کاردی در قلبش فرو کردند اون قش کرد و نقش بر زمین شد پادشاه که میترسید بلایی بر سر شکارچی عزیزش اومده باشه شتابان به طرفش دوید تا کمکش کنه اون دستکش های شکارچی رو درآورد آورد و چشمش به حلقه افتاد که به عشق اول خودش داده بود اون به چهره شکارچی خیره شد و اون رو شناخت. قلبش سخت به درد اومد. همین که دختر به هوش اومد و چشمهاش رو باز کرد، پادشاه فریاد کشید من از آن تو هستم و تو از آن منی. هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. او قاصدی به سمت شاهدخت دوم که در سفر بود فرستاد و خواهش کرد که هرچه زودتر به سرزمین خودش برگرده. پیغامش این بود. من حالا همسر دارم. کسی که گمشدهی خودش رو پیدا کنه نیاز به یار دیگری نداره. به این ترتیب جشن عروسی با شکوهی برپا شد. شیر هم دوباره مورد توجه قرار گرفت و جایگاه خودش رو پیش پادشاه حفظ کرد. چون اون همیشه حقیقت رو می گفت. امیدوارم از این داستان زیبا هم لذت برده باشید. روز و روزگار بر شما خوش. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me نقط نشانی وبلاگ ما M ای ای دوستی